بسم الله الرحمن الرحيم فصل شروط زكاة الخليطيني شرط هاي زكاة دوتا خليط دوتا كسي كي بيستله خدمون بشن ميهيم شريك هسن درمال والخليطاني يزكياني زكاة الواحد بسبع اي شرائط دو تا شریک زکات یک نفر رو میدهند ولی به هفت شرط دو تا شریک زکات یک نفر رو میدن به هفت شرط یک اذا کان المراخ واحدا زمانی که خوابگاه اون حیوانشون حیواناتشون یا گوسفندانشون مثلا یکی باشد پس زمانی که خوابگاه گوسفندانشون یکی باشد و المصرحو واحدا مسرح هم یکی باشد خب صبح که گسفندو میبرن برای چراگاه یک جایی جمع میشه بعدش از اونجا دیگه میره به سمت چراگاه من اون جمش اونجایی که جمع میشند تا بعدا سوق داده بشن به سمت چراگاه اینو میگن مسرح این مسرحی یکی باشه و المرعى واحدن چراگاه یکی باشد, باشد. اونجایی که میرن برای چرا یکی باشد و الفحل واحدن نرینه اونی که نر حیوانات هست شو میگن فحل نرینه یکی باشد یه حیوانی نری هست که رمه رو ماده لقاح میکنه برای بچه آوردن. بردن اونو میگن نرینه نرینه یکی باشد والمشرب المشرب واحدن آبگاهشون یکی باشد جایی که آب میخورند و واحدن بواحدا میگه دوشندهشون یکی باشد ولی اینجا در این پاورقی که زده این مختصر کتاب من تعلیقاتی زائز داره از دارالمنحاج هست میگه که اکثر علامه برینند که چوپان یکی باشد نه دوشنده ها اکثرون اتحاد الراعي للحالب اکثر علما میگن که چوپان یکی باشد نه دوشنده و موضع الحلب واحدا و اون جایی که گوسفندار رو یا حیوانات شریکی رو میدوشند هم یکی باشد پس اگر این هفت شرط بود خلاص دیگه دو تا شریک یا سه تا شریک خلاصه شریکان در این حالت زکات یک نفر رو میپردازند مگر اگر تا هست یکی رو میدند اگر هشتاد هستند یکی رو میدن. تا صد و بیست صد و بیست یک شدند دیگه خب مثل همون نسابی که اونجا بیان شد قبلا مثلا این مال گسفند شریکی بود ولی به این هفت شرط فصل نساب الظهب و الفضه نساب تلا و نقره و نساب الظهب اشورون مثقالا نساب تلا بسمثقال است نساب نساب تلا بسمثقال است وفيه ربع العشر ودران یک چلوم زكاة بدهت یک چلوم بیس مسقال بشي ميغاد مشه؟ وهو نصف مسقال نصف مسقال آره ديگه بیس تخسیم ار چل مشه نصف ديگه یک چلومش نصف مشه اگر باشن مسقال میده حالا که بیس هسن ديگه نصف میده وفي مازاده به حسابه و هرچی بیشتر کشدن تبقی حمون حسابش زكاة میده بله. یعنی مثلا اگر فرزن شدند سی مسقال ها هفتاد پنج درصدشو میده دیگه چلتا که شدند یک تای کامله یک مسقالو زکات میده خب الان گرمیش مسقال و این کتاب من در پاورقی در آورده 4 گرم و دویست و, و میلی گرم حتما دیگه که جمعا درش آورده بیس مسقال مساوی است با هشتاد و چار گرم و شستوتو. خیلی از علما هشتاد و پنج گرم درش آوردند خب این دیگه خیلی راحته ف به حسابه از 85 گرم یک نصف مسقالو میده یعنی 85 گرمو تقسیم بر 40 میکنه هر چقدر درآمد اون میشه زکاتش موقعی که گرمی روش حرف بزنیم دیگه گرمی هم دیگه زکاتش داده میشه ست تاکه شد تقسیم بر چل میشه دویست تاکه شد تقسیم بر چل میشه از دویست دویس گرم تقسیم بر چل میشه پنج گرمش به این شکل ولا تجبه فی الحلی زکاتون میگه در زیور آلات مباح اونی که برای استعمال استفاده کرده آماده شده برای زیور آلات و مباح البته باشه زکاتی نیست مثلا چطوری؟ مثلا نقره برای مرد جایزه خب مرد اگر اومد انگوشتری انگشتری نقرهی داشت این دیگه زکات نداره چون برای مرد جایزه استفاده کردن نقره اما اگر مرد اومد و مثلا الانگو خب این براش مباح نیست لذا این زکات داره پس واجب نیست در زیبرالات مباح زکات آها یک خط منده بود و نصاب الورقی می اتادر همین پس نصاب طلا 20 مسقال بود که نصف نصف مسقال زکات میداد یعنی یک چلومش رو که از توبه حساب های امروزی 82 5 گرمش میگیریم خب فعلا ما گرتین کتابه ورقی 84 گرم درآورده و نصاب وريق ايه كاشك انجا گفته بود نسابه شده ونسابه نقره است كدر ربعه اوش رست باسم یک چلو و خمسه تو دراه خوب مسلمه که از دویست درهم یک چلمش میشه پنج درهم از هر چلتا کیه که یکی میشه تا دویستا میشه دیگه 5 تا و فی مازا به حساب اضافه که شد حسابش یک مش داده میشه مال نقره رو این کتاب من در پاورقیش 652 گرم 652 گرم بله خیلی از کتاب که من دیدم در آوردن 595 گرم در هر صورت ایشون در آورده 652 گرم ولا تجب في الحلي المباح الزكاة كأنه تعزيز دادم وواجب ليس در زير علاقاتك المباحسس شون زكاة. زكاة. فصل نصاب الزروع والثماري نصابة زرع ميّه، آه نصابة كشتة وميّه ونصابة الزروع والثماري خمسة أو سقين. نصاب در کشته که قبلا توضیحش رد شد و در میوه ها که قبلا واسم توضیحش رد شد خمسه اوسق پنج وسق است وہی الف و 600 رطل بالعراقی و پنج وسق 1600 رطل عراقی است خب ما اینو به حساب امروزی در بیاریم کتاب من اینو 650 کیلو درآورده که خیلی از ونما اینو ششتد کیلو درآوردند و فی مازاده به حسابه و هرچه اضافه تر شودن بر همون حسابش چطوری؟ یعنی جلوتر میگیم و فیها ها انسقیت بماء السمایی او السیحی العشر اگر با آب آسمان یعنی آب باران آبیاری شده بود؟ یا با آب سیل آبیاری شده بود یک دهم ده زکاتش و ان به بالدولاب او نضح نصف العشر اما اگر آبیاری شده بود با دولاب یا با شتور یا با چیزای دیگه که زحمت هستند نصف عشر که یک بسمه پس اونجا گفته بود به پنج واسق که رسیدن زکات میاد یعنی طبق حسابه امروزی تقریبا 650 کیلو و فیمازاده به حسابه و اضافه که شد به حسابش یعنی مثلا 700 کیلو که شد خب بر حساب خودش همون یک چلمشو در میاریم چی میگم اگر با آب بارندگی بود و آب خلاصه سیل و این چیزا بود که زحمت نداشت یک دهمش ده زکات داده میشه و اگر با دولاب و موتورهای دینابه های امروزی که خزینه و خرج دارند همون یک بیستمش به عنوان زکات پرداخت میشه هرچه اضافه تر شد طبق حسابش یعنی یک دهم یا یک بیستمش طبق توضیحی کرد شد فصل زکات و عروض تجاره زکات کالاهای تجاری وتقوم و تو عروض تجارت اند آخر الحول به مشطوریت به کلاه تجاری شخصی دوکان داره خلاصه موبایل فروشی داره کامپیوتر فروشی داره تایر فروشی داره نمیدونم ابزارالات داره هر چی داشته باشه وتقوم و تو قیمت گرفته میشند و روز تجارت در آخر حول در آخر اون سال زکویشون به مشطوریت به قیمتی که خرید شدند به با آن به نصاب که رسیدند خلاص زکاتشونو باید بپردازه و یو خرج من ذلك ربع العشره چقدر پرداخت میشه؟ قیمت نقره و قیمت تلاو نقره محاسب میشه یک چهل میشوند، یک چهل میشوند زکات داده میشه بله اگر چهل میلیارد، اگر چهل میلیون، خب یک میلیونش زکات داده میشه. یک از هر 40 تاش یک ربع عشر فصل زکات المعدن والركاس زکات المعدن و الجنجينه وما استخرج من معادن الذهب والفضه فهرانش که خارج شد از معدن طلا نقره يخرج منه ربع العشر في الحال خارج میشه از اون یک چلمش فوراً یعنی بدون اینجا دیگه حال نیاز نیست که سال ازش رد بشه و ما یوجد من منر رکازی الخمس و در گنجینه و آنچه کیاف شود در گنجینه همون دفین جاهلیتو میگند اون چیزی که در زمین دفن شده باشه در زمین مواتی اون هم گیر بیاد و آثار جاهلیت برش باشه. اینجا یک پنجم به عنوان زکات میده در گنجینه در آنچه که دفن شده است و از دوران جاهلیت هست یافت شد ففیه الخمس یک پنجم زکاتش. بعد. فصلن زکات الفطری، زکات الفطر. و تجب زکات الفطر به سه چیز واجب میشه. یک الاسلام شخص مسلمان باشه، دو و به غروب شمس من آخری یومن، من شهر رمضان. خر... با غروب خورشید آخرین روز رمضان. پس اسلام دو دومین شرطش اینه که خورشید غروب کنه آخرین روز. سه و وجود الفضلی انقوده و قوت ایاله. فی ذلک اليوم شخص اضافه بر غذای خودش و غذای ایالش در اون روز اضافه داشته باشد. پس مسلمان باشد خورشید که غروب کرد آخرین روز. و غذای اون روز خودش و اهلش را که داشت بر اون شخص زکات فطر واجب میشه احناف دیگه در فطر هم معتقد به نصاب هستند و یزکی ان نفسه و عمن تلزمه نفقته من المسلمین من قوت بلده <تصفح> الحمدلله میگه زکات میده به جای خودش و به جای کسانی که نفقهشون بر اون لازم هست از مسلمانان. هم زکات خودشو میده هم زکات اونای رو میده که نفقهشونو داره میپردازه تحت مسئولیتش خرج میخورند چقدر میده ساعن من قوتی یک ساع از خوراکی های بلدش و اندازش پنج رتل و یک سوام رتل است. کتاب من در آورده دو هزار و سد و شست و خوردی گرم یعنی دو کیلو 166 شیش بله دیگه از دو کیلو و نیم تا سی کیلو اینو علمه های ماصر در آوردند که به جای خودش و به جای اون زیر که تحتش هستند زیر مسئولیتش غذا غزا میخورند بپردازد شخص فاصل مسارف الزکات جاهای مصرف زکات قبلا ما خوندیم زکات شکل مفصل الان اینو میخونیم که زکات به چه افرادی داده بشه و تو تفوز زکات الی الاصناف الثمانیه الذین ذکرهم الله تعالی فی کتاب العزیز فی قولی تعالی پرداخت میشه زکات به گروه های ای که الله تعالی آنها را در کتابش ذکر کرده است در این آیه کریمه اینما الصدقات للفقراء همانا زکات زکات ها هستند برای کی؟ یعنی زکات ها این هشت گروه پرداختان یک للفقراء برای فقیران فقیر اونیه که مالی که کفایتش بکنه نداره مانند کسی که مثلا ماهانه به ده میلیون نیاز داره ولی فقط میتونه دو, دو میلیون به دست بیاره والمساکین گروه دوم دو مساکین هستند مساکین در طبقه تعریف اینه که حالتش از فقیر بهتره یعنی کسی که یه چیزی داره که اون حاجتشو براورده میکنه که کفایتش نمیکنه مثلا طبقه اون مثال ماهانه ده میلیون نیاز داره میتونه تا هشت میلیونشو مثلا به دست بیاره یعنی حال این بهتر از اون فقیره پس اصلا یا جوری دیگه تعریفش کردن میگن فقیر اونی هست که ندارد و مسکین آن هست دارد منطقه مورد کفایتش یعنی براش کافی نیست پس زکات برای فقرا هست برای مساکین هست و والعاملین و برای اونایی که زکاة و جماوری میکنند دولت اونارو رو گفته شما برید زکاتو جمع کنید اینو میگن بهش عامل اگرچه که این پول هم باشه ولی مستحق زکاة این آمل بوده دیگه رفته جمعواری کرده و المعلفت قلوبها گروه بعدی اونایی که تازه اهده به اسلام هستند تازه اسلام آورده اند خلاصه اینها هم زکات گیرشون میاد معلفت قلوبم هم تا دلشون به دست بیاد و فی الرقاب سه در آزاد کردن برده مکاتب قرارداد داره با صاحبش تا در مقابل یک مقدار مال مشخص که آزاد بشه این زکات گیرش میاد تا آزاد بشه و الغارمین و اونایی که بدهکار هستن و توانایی پرداخت بدهیشون ندارن و فی سبیل الله گروه بعدی هفتم فی سبیل الله هستن اون جنگجویانی هستن که دافتلبانه رفتن در راه خدا می جنگند و جای حقوقی ندارن و ابن سبیل و مسافری که در راه از خرج مسیرش مونده و مستحق پس این هشت گروه که در آیه کریمه اومده بودن اینها. مستحقان زکات هستند. یعنی زکات در این هشت گروه تقسیم میشه. و ایله من یوید من هم و تقسیم میشه به کسانی که از اینها یافت بشند و تقسیم میشه در بین کسانی که از این هشت گروه یافت بشند. اگر هر هشت گروه بودند چه بهتر؟ ولا یا قطص رو من فلست من کلی س ال عامل میگه اکتفا اقاتفاع نمیکنه در دادن زکات بر کمتر از سه نفر از هر صف جز از عامل که رفته جمع کرده خب مثلا در یه منطقه یک عامعمل نیاز بوده یک عامل رفته زکاتو رو جا کرده. اینجا یک نفر جایزه ولی در صنف های دیگه میگه حداقل به سه نفر بده. مثلا در میان فقرا 3 نفر رو بده در میان مساکین سه نفر رو اینجوری چرا این استنباط رو از اونجا کردن که میگن الله متعال این زکات رو اضافه کرده با لفظ جمع با لفظ جمع اومده فقراء و مساکین و اقل جمع هم 3 نفر است سمات قشنگی خلاصه میگه که پس اکتفا نمیکنه بر هر سنفی از اصنافی که ذکر شد بر کمتر از سه نفر یعنی هر سه نفر رو میده و خمسه تون لایجوز و لا دفعه ها پنج نفر هستند که یا پنج گروه که زکات دادن زکات به اونا جایز نیست لایجوز و دفعه جایز نیست پرداخت زکات به آن الهیم پرداخت زکات به الهیم به سمتشان پس پنج گروه هستن یا پنج نفر هستن که دفع زکات به آنها جایز نیست یک الغنی و بمال او کسبن شخصی که بینیاز باشه حالا یا با مال یا با شغلی که لایق و شایستهش هست دول عبد به عبد جایز نیست البته غیر مکاتب چون مکاتبو قبلا خوندیم که دیگه جایزه اما اون بردهی که تحت سر پرستش سیدشه دیگه زکات برایش جازی نیست چون مال برای خودش نیست و برای سیدش میشه. سی و بنو هاشم و بنو المطلب. بنو هاشم و بنو المطلب. این اهل بیت هستن بله و چهار کافر. پهانج من تلزم المزکی نفقته. لا يدفعها اليهم باسم الفقراء والمساکی. پنجبین گروهی که زکات برش جایز نیست اون افرادی هستند که نفقهشون بر خود مزکی هست میگه این مزکی زکات دهنده زکات رو به سهم فقرا و مساکین بهشون نمیده لا فوه الهیم بسم الفقراء و المساکین یعنی شخص زکات دهنده اونایی رو که خردشون مثل زنش مثلا مثل پسرش مثلا میگه زکاتو رو بهش نمیده به اسم یا از سهم فقرا و مساکین بهشون نمیده بله اگر جهاد کننده بودند یا بدهکار بود یا آمل بود از اون زاویه میشه بهشون داد ولی از زاویه فقیر بودن و مسکین بودن دیگه نمیتونه زکات دهنده زکات رو به کسی بده که خرجش برگردنش هست موفق و معاید باشده